هر جوان مسلمان باید دارای یک هویت مستقل باشد. علمی و در سال 1930 سخنرانی ماند هبیب الله مردانی، موضوع اوامر سرگردانی جوانان در اسیرهاست. اجرا و زعب دارای هویت مستقل. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم شاب نشأ في طاعة الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. الله ظ و خداوند بیمثال و بی همتا را شاکر و گذاریم در این شب مبارک و در این مکان مقدس توفیق حضور در این جمع نورانی و در این مجلس ایمانی را عنایت فرمود دعا بفرمایید که الله تبارک و تعالی این نشست و این سلسله مبارکه نشستهای دینی را قبول بفرماید و باعث بیداری ما و جامعه اسلامی و باعث ایجاد وحدت و همدلی و رونق دین و از همه مهمتر باعث کسب رضایت خودش و خوشبختی ما در دنیا و آخرت بگرداند و ذلک علی الله عزیز جا دارد که تشکر بشود از بانیان این خیر و عزیزانی که در این جریان زحمت کشیدند و چندین سال است که به طور مستمر سالانه این نشست ها و جلسات علمی و اصلاحی و فرهنگی را برگزار می کنند و هزینه می کنند از وقتشون از فکرشون از مالشون الله تبارک و تالا به وقت و فکر و مال و و نیات عزیزان برکت عنایت بفرماید حقیقتا صحبت های کامل و مفید و عالمانه رو جناب استاد مولانا عبداللطیف حفظه الله بیان کردند و به اون مواردی که ایشون در تکوین و تشکیل زندگی ایمانی اشاره کردند اگر ما عمل بکنیم برای ما ان الله کافی خواهد بود اما فرصتی دست داد و اصرار دوستان بر اینکه در این جمع کلماتی را از بزرگان و در پرتوی قرآن و سنت در باب جوانان و اهمیت این قشر و نیازهای اساسی این طبقه از جامعه و این قشر از جامعه سخنان کوتاهی گفته بشود دعا بفرمایید که الله تبارک و تعالی توفیق گفتن کلمات حق و اخلاص و عمل به همین من و شما انایت بفرماید درود شریف بخانید اللهم صلی عزیزان و سروران گرامی وقتی در یک کشور در یک در جهان بشری ما مهمترین توانها و ظرفیتها و قدرتهای یک جامعه را بررسی می کنیم ممکن است ازهان خیلی به بسیاری از طاقتها و توانها و ظرفیتها و نیروهای غیر انسانی متوجه بشود. ممکنه قدرت اقتصادی برای یک کشور منبع قدرت و توان برای اون کشور معرفی بشود. ممکن است قدرت نظامی و تولیدات و تسلیحات جدید و مسلح شدن به نیروهای جدیدی که در جهان کشف شدند و تسلیحاتی که اختراع شدند به عنوان قوت برای یک جامعه معرفی بشود برای یک کشور فلان کشور مجهز به بمب اتم و نیروهای رادیواکتیو و اتمی است فلان کشور دارای توانایی های نظامی است فلان کشور دارای قدرت اقتصادی است فلان کشور دارای ذخایر بسیار بزرگ زیرزمینی است. فلان کشور معادن بسیار زیادی دارد. نفت دارد، گاز دارد. های معدنی بسیار ارزشمندی دارد، طلا دارد، الماس دارد، مرمر دارد، لعل و بدخشان دارد. لازم این کشور دارای потенشیل و نیروی بسیار بالایی هست. ممکن است از یک دید اینها وجه برتری یک کشور بر بقیه کشورها باشند. اما از نگاه انسانهای حقیقت بین و انسانهایی که به عمق حقایق پی بردند و نیروهای حقیقی را تشخیص دادند، اینها وجه برتری و قوت یک کشور نیستند. بزرگترین نیرو و توان و ظرفیت یک کشور مردم اون کشور هستند انسانهایی هایی از در اون کشور زندگی میکنند اقشار مختلفی از که در اون کشور نفس میکشند و حیات و زندگی و نشاط دارند به همین خاطر علما گفتند که بهترین حاکم و بهترین و موفقترین حکومت اون حکومتی است که ارزش جامعه و افراد جامعه خودش را بداند و برای رشد و بالندگی و پویایی تمام اقشار جامعه خودش فکر و مشوره و ریزی و سرمایه‌گذاری بکند اگر در یک کشوری معادن مختلف وجود داشته باشند زخائر زیرزمینی سرشار باشد از نفت و گاز و بقیه در اون کشور فراهم باشد اما جامعه ای که این کشور متعلق به اونهاست افرادی که این کشور به وسیله اونها میچرخد افرادی که میتوانند این معادن را استخراج بکنند افرادی که میتوانند از های طبیعی این کشور استفاده بکنند اگر اونها رشد نکرده باشند اگر اونها مورد توجه قرار نگرفته باشند اگر اونها ضعیف باشند اگر اونها ترقی و پیشرفت نکرده باشند و به تعبیر کاملتر اگر اونها ساخته نشده باشند این کشور یک کشور بسیار ضعیفی خواهد بود و این کشور یک کشور مصرف کننده خواهد بود با وجود مواد خام و مواد اولیهی که در این کشور وجود دارد با وجود معادن و زخائر و ارزش‌های طبیعی که در این کشور وجود دارد اگر آبهای شیرین در این کشور فوران بکنند و آبشارها هر جا چشم نوازی بکنند اما اگر انسانها جاری نباشند انسانها زلال نباشند انسانها ساخته شده نباشند انسانها پیشرفت نکنند انسانها آگاه نباشند انسانها درست نشده باشند اون جامعه به زودی زود مزمحل میشود اون جامعه چپاول میشود اون جامعه از بین میرود هستند در دنیا کشورهایی که هیچ کدوم از اون پارامترها و از اون گذینه هایی که گفتیم به عنوان پتانسیل و قدرت ندارند قدرتهای نظامی ندارند، تولیدات نظامی نداشتند زخائر زیرزمینی و عرضی نداشتند، معادن سرشار ندارند نفت و گاز و غیره رو ندارند حتی کشاورزی ها و زمین های حاصل زیاد هم ندارند اما امروزه در دنیا می درخشند. بزرگترین سرمایه اون کشورها مردمانی هستند که در اون کشورها زندگی می کنند و اون حاکمانی که توانستن قدر این پتانسیل بسیار بزرگ را بدانند و برای رشد و تکاپو و پویایی این نیروی بسیار بزرگ انسانی بر نامریزی و تلاش بکنند موضوع ما جوانان هستند قلب تپنده یک جامعه انسانی و یک کشور از میان اقشار جامعه از میان این نیروهای بسیار بزرگ و این معادن بسیار بزرگ و بسیار قوی و ارزشمند جوانها کسانی هستند و قشری هستند که محور نشاط و محور حرکت و محور زندگی و حیات را در یک کشور تشکیل می دهند اگر جوانهای یک کشور مورد توجه قرار بگیرند و اونها با برنامه ریزی های قبلی رشد بکنند علم داشته باشند اخلاق داشته باشند تعهد داشته باشند سرزندگی داشته باشند تکاپو و تلاش داشته باشند احساس مسئولیت بکنند دارای هویت و شخصیت باشند دارای هم و غم و جدیت باشند اون جامعه نیاز به هیچی دیگری ندارد دوستان من اون جامعه دارای یک اکسیر و کیمیایی است که خاک را به زر بدل میکند همین جوانهایی که به عنوان پتانسیل قابل فعالیت و جنبش در یک جامعه در حال رشد و ترقی هستند و بزودی زمام جامعه را این جوانهای تربیتی یافته به دست میگیرند و بزودی از این کشور گمنام یک کشور نامدار میسازند از این کشور عقب مانده یک کشور پیشرفته خواهند ساخت و از این جامعه از همگسیخته بیهویت یک جامعه منسجم دارای شخصیت و هویت خواهند ساخت حاکمان و عالمان و مسلحان و دعوتگران عاقل و دوراندیش روی این قشر توجه بسیار ویژه میکنند ریزان معلمان مربیان روی این قشت توجه خاص و توجه ویژه می کنند و بررسی می کنند اوامل ماندن این جوانها را عوامل سرخوردگی این جوانها را اوامل زدگی و سرگردانی این جوانها را و برای رفع این عوامل و این اسباب و این کاستی ها و این آسیب ها فکر می کنند و برنامه ریزی می کنند. و میسازند جامعه آینده خودشون را. بعضی از مشکلات اساسی که ما نمیتوانیم البته توی این وقت مختصر نه اون دانش رو داریم و ادعا میکنیم و نمیتوانیم توی این وقت مختصر به همه آسیبهایی که و همه معضلاتی که یک جوان در اون زندگی میکنه و باش مواجه میکنه در جامعه بپردازیم اما کلیاتی که به ذهن همه شما شاید برسد و به چشم اکثر من و شما خورده است در جامعه به اونها اشاره میکنیم و مهمتر از همه ارائه راهکار است سروران. اولین و مهمترین معضل جوان ما احساس ضعف و سستی و احساس حقارت و احساس خود کمبینی است گمان نکنید که این توی جامعه نیست این معزل متاسفانه خصوصا در جوامع شرقی ما خصوصا در جوامعه در که و در اقشاری که به نحوی در اقلیت قرار میگیرند در یک جامعه در یک کشور این احساس وجود دارد احساس خود کمبینی احساس حقارت احساس سستی و ضعف در جامعه و به تعبیر دیگر علمای اخلاق در عربی مرکب النقص این احساس نقص میکند احساس کمی میکند این یکی از بزرگترین اسبابی است که نه تنها جوانان را عقب انداخته بلکه کل جامعه را عقب انداخته است علامه سید ابوالحسن ندوی رحمت الله علیه که یک جامعه شناس بسیار ماهر و یک دعوتگر بسیار قوی و یک مصلح ربانی بودند میفرمایند دشمن برای نابود کردن جامعه انسانی و جامعه اسلامی خصوصا دوتا دشمن را بر جامعه اسلامی مسلط کرد دوتا دشمن که خطرناکتر و درندتر از تاتار و مغول هستند میفرماند این دو دشمن چی هستند یک ضعف ایمان دو احساس حقارت دو تا دشمن را بر جامعه اسلامی سعی کردند اسبابی را فراهم بکنند که این دو دشمن در جامعه اسلامی نفوذ پیدا بکند و مسلط بشود و سیطره پیدا کند و اون جامعه ضعیف بشود و اون جامعه از بین برود اولین، ضعف ایمان چرا؟ چون بزرگترین سرمایه یک جوان جو بزرگترین سرمایه یک انسان مسلمان ایمان است و با این ایمان او می کارهایی بکند که از ذهن بسیاری از اقلاب دور است و نمیفهمند و درکش نمی کند معادلاتی را به هم می زند صاحب ایمان ایمان انسان ضعیف را قوی می کند قلیل را کثیر می کند انسان پشمرده را سرحال می کند انسان بزدل را انسان شجاع می گرداند ایمان تحول به وجود می از سروران گرامی یک جوان وقتی که در دل او ایمان تبلور پیدا می کند او سختی ها را تحمل می کند او خمودگی را کنار میگذارد. او از خواب بر می خیزد. ایمان بیدار میکند انسان ها را اگر به جامعه عرب نگاهی بیندازیم اونهایی که ایمان در دل اونها وجود نداشت در جهان کسی اونها را نمی شناخت حتی کسی حاضر نبود که بر جامعه عرب حکومت بکند اما وقتی که محمد رسول الله صلی الله علیه و بزرگترین مربی و بزرگترین مصلح و بزرگترین معلم تاریخ بشر به این مواد خام بشریت روی آورد و توجه کرد و به این بزرگترین سرمایه یک کشور و یک جامعه توجه کرد و نیروی ایمان را در دلهای اونها قرار داد و رشد داد اونها تبدیل شدن به یک جامعه پویا اونها تبدیل شدن به یک جامعه مفید تبدیل شدن به رهبران جامعه بشری. لذا دشمن ضعف ایمان را بزرگترین حرب برای از بین بردن جامعه اسلامی فهمید و در موردش کار کرد. و دومین احساس حقارت و خودکمبینی. ببینید دشمن در جنگ فکری شاید شما درسی داشتید و حتما مطالعاتی داشتید. نو جوان ها جوان ها بزرگتر ها اساتید تشریف دارند دشمن به دو تا چیز دست پیدا کرد و جامعه را به وسیله این دو تا حربه ضعف ایمان و ضعف شخصیت از پای در آورد یک رسانه دو نظام آموزشی به وسیله رسانه ها که امروز رسانه های بسیار مختلف و متنوع رو ما در دنیا داریم از رسانه های خواندنی که روزنامه ها باشد و مجلات باشد و کتابها باشد و صفحاتی که در فضای مجازی به صورت نوشتاری پخش می شود و از رسانه های دیداری و شنیداری که صدا و سیما بهش میگن وسائل الاعلام رسانه ها و از فضای مجازی و اینترنت و این شبکه‌های محواری و این شبکه‌های جهانی برای تبیین اهداف نادرست خودشون بلکه برای تزیین اهداف باطل خودشون استفاده کردند و همه اقشار جامعه را مورد هدف قرار دادند از اون کودک تا نوجوان تا جوان تا پیر همه را مورد هدف خودشون قرار دادن یک مقوله مشهوری است میگن که یهودی ها قبلا میگفتند کانل یهود یرفعون شعارا فی القدیم مَن یملک الذھب یملک العالم قدیما یهودی ها این شعار رو میدادند هر کس که طلا را به دست آورده باشد جهان را به دست خواهد آورد و این یهودی ها در طول تاریخ هم خیلی دنیا دوست و مال دوست بودن اما الان چی میگن والآن الان یرفعون شعارن من یم لکل اعلام یم کل عالم هر کسی که رسانه ها را به دست دارد جهان را در دست دارد چون توجیه افکار عمومی در دست رسانه ها است و غرب رسانه ها را در دست گرفته است به نحوی که این فضا با امواجش در دست غرب است ما اگر به را به فضا بفرستیم غرب بخواهد جلوش را بگیرد میتونه بگیرد و او با امواج مبتزل و فاسد خودش به سوی جهان اسلام روی آورده است بعضیها فکر میکنند شما به ما میگن که شما خیلی بدبین هستید شما مولوی ها و تبلیغی ها و دعوتگران و به همه به چشم دشمن نگاه میکنید میگید خارج غرب با این نیت تو کشورهای ما میاد غرب با این نیت تو کشورهای ما میاد کی گفته چنین چیزی است این خودش در نتیجه همون تبلیغاتی است که غرب به وجود آورده است همین کلام امروز شما میبینید که اینو به این خاطر باز میکنم چون که یکی از بزرگترین اسبابی که باعث نگرانی جوانها و عقب ماندن جوانها و دور کردن اونها از هدف شده است همین وسائل اعلام یا رسانه ها هستند که اینترنت هم جز به است شما نگاه بکنید مگر در دنیا ظلم جاهای مختلف به صورت واضح و آشکار وجود ندارد مگر در میانمار پوست از کله مسلمان ها نمی کندند مگر شکم زنها را نمی دریدند مگر زنده زنده اونها را در آتش نسوختند مگر خانه های مسلمان ها را بر سر اونها خراب نکردند مگر اونها را به زور از شهر اونها، از دیار اونها بیرون نکردند مگر در چین این کار نمی شود؟ مگر اردوگاه های اجباری که نوزاد را از مادر جدا میکنه و میخواد اون رو کمونیست تربیت بکند کارگری بکند بیگاری بکشد پدر و مادر و او مگر وجود ندارد در دنیا همین چند روز پیش رئیس جمهور کره نگفته بود خاطر سالگرد مرگ پادشاه قبلیشون تا غالباً بیست روز گفتن یازده روز کسی حق نداره بخندد چرا فضای مجازی پر نشد که بر علیه انسانیت این چه حرفی است این چه فتوایی است این چه دستوری است خنده غدغن مگر الان تو کشورهای مثل کره شمالی و غیره اینا مگر نظام زنجیر عقلها وجود ندارد مگر در خیلی از کشورهای دیگه نظام طبقاتی وجود نداره مگر در هندوستان زنها را نمی سوزنند بعد از مرگ شوهرشون هنوزم هست مگر جاهایی نیست که انسانها مالهای خودشون رو به دریا می ریزند برای یک تفکر نادرست چرا موج تبلیغاتی غرب در مقابل اونها قرار نمی گیرد چرا فجایی که اونها به وجود آوردند به تصویر نمیکشد؟ اما اگر در یکی از کشورهای اسلامی یک مجرم و یک دزد را دستش را قطع بکنند دنیا سر صدا میکنه یک قاتلی که هزاران نفر را کشته و بمباران کرده اگر او را سرش را بزنند همه میگن که این خونریزی و این ارهاب و این تروریسم و این ها هست یکی از دوستان و یکی از علما در این خودش مطلبی در دفاع از یکی از سران امارت اسلامی افغانستان نوشته بود و یکی از تصویرهایی که از جنایات آمریکا در افغانستان بود اونجا گذاشته بود روز نه روز نگذشت چند ساعت بعد این اینستاگرام تصویرش رو حذف کرد و خود صفحهش رو بلاک کرد قفلش کرد و پیام برایش آمد اگر شما یک بار دیگر این موقتی است تا چند روز است اگر شما یک بار دیگر این چنین پیام بنویسید معنایش این است که اگر شما یک بار دیگر از کشور اسلامی و حکومت اسلامی دفاع کنید و بر علیه غرب و جهان غرب چیزی را به تصویر بکشید و مردم را بیدار بکنید ما کلا صفحه شما را محو میکنیم از بین میبریم بعد دم از آزادی رسانه و آزادی بیان هم زده می شود. این توهم نیست، ما در توهم نیستیم. ما در واقعیت هستیم دو تا دشمن را به وسیله دو تا حربه بزرگ بر ما مسلط کردند. ضعف ایمان و ضعف شخصیت و خودکمبینی به وسیله رسانه ها و به وسیله نظام آموزشی غربی. جوانهای ما همینجا هستند یا با رسانه ها اگر به مدارس و دانشگاه ها نرفته باشند در پرتو رسانه ها قرار دارند و این ضعف شخصیت بزرگترین عاملی است که جوان ما را به خانه کشانده و اون رو کرده است اون از هر نوع ابتکار و هر نوع خلاقیت و هر نوع حرکتی باز داشته است یک چیزی است که اقبال لاهوری رحمت الله رو بسیار ناراحت کرده همین است اصلا بزرگترین شاهکار اقبال دعوت به سوی خودی است خودت را بشناس خودت باش عیزه خود گم گشته خود را باز یاب چرا خودت رو گم کردی تو شمشیری ز کام خود برون برونا از نیام خود برون حجاب از ممکنات خیش برگیر ممکنات یعنی استعدادهای درونی خودت رو شکوفا بکن پرده بردار تو میتوانی مه و خرشید و انجم را به برگیر تو میتونی به ماه برسی تو میتونی به سیارات دیگر برسی تو میتونی اکتشاف بکنی تو میتونی امت برتر استی باشی به همی خاطر اینجا فلسفه خودی اقبال جلوه میکند یک توجه بکنید ببینید اقبال دو تا مصنوی داره یکی ف... مصنوی اسرار خودی و دومی رموز بی خودی مصنوی رموز بی خودی خودش میگه شاید شما به من اعتراض کنید که تو یک بار دعوت به خودی میدی یک بار دعوت به بی خودی میدی این چه است؟ چرا گویی میکنی؟ تو خودت فیلسوفی میفرماد نه اگر من فیلسوفم حرف مرا گوش کنید به قول منطقیات در تناقض هشت وحدت شرط دان اینجا اون هشت وحدت نیست موضوع یکی است اما اینجا حیثیات فرق می کند آنجا که دعوت به خودی میدهد یعنی هر فرد مسلمان هر جوان مسلمان باید دارای یک هویت مستقل باشد باید به وسیله نیروهایی که خدا به او داده و نیروهایی که دین به او داده خودش را بسازد یک شخصیت قوی بشود دارای هویت بشود دارای هویت مستقل به هیچ جایی وصل نیست غیر از الله به هیچ کسی محتاج نیست این توانایی دارد این به قول اقبال خورشید و این شمشیر و این انسان توانا به وسیلی دین می تواند قوی و قویتر بشود به همین خاطر سه تا مرحله برای پرورش این خودی را اقبال برای من و شما بیان می کنند که در راه پیشرفت جوان ها این سه مرحله وجود دارد برای بازگرداندن اون هویت از دست رفته برای از بین بردن این معزل اول و بزرگ جوان های ما که بحران هویت و بحران شخصیت باشه و احساس اقارت و خود کم, کم بینی باشه این سه مرحله رو اقبال پیشنهاد می کند مرحله اول اطاعت اطاعت از چارچوب شریعت میگه این شریعت آماده است که تا خود را در تو یعنی خود تو را یعنی توانایی های درونی تو را یعنی هویت تو را یعنی شخصیت تو را پرورش بدهد دین آمده است تو را در یک چارچوبی قرار بده تو را از این چارچوب یک شخصیتی در تو بسازد که تو توانایی پرواز در عالمهای بسیار وسیع داشته باشی اطاعت بکن از این چارچوب متمرد نباش ای جوان ای جوان عزیز گمان نکن که شریعت آمده است که تو را پایبند بکند گمان نکن که شریعت آمده است که تو را آزادی را از تو بگیرد بلکه شریعت آمده است در یک چارچوب تو را قرار بدهد که تو بتونی رشد بکنی یک کودک وقتی به حرف معلم گوش نکنه اون سواد یاد اگر معلم گفت این الف است این باس اون تا است در این چارچوب بنویس به این شکل بنویس اگر در این چارچوب خودش را قرار ندهد او با سواد نمیشود شود خدای عالم که انسان را خلق کرده است چگونگی تبلوره استعدادهایی که خودش به ودیعت گذاشته در انسان رو خودش خبر دارد، به ما یاد داده است. نماز در شما این تحول را به وجود می آورد. زکات در شما این تربیت را به وجود می آورد. حج در شما این تربیت را به وجود می آورد. روزه این رشد و ترقی را در شخصیت شما به وجود می آورد. لذا اولین راهکار، شریعت برای جوانها، برای هر فرد مسلمان پایبندی و اطاعت است از شریعت می‌فرماد ناکس از فرمان پذیری کس شود انسانهای بیقدر به وسیله اطاعت باقدر می شوند. ببینید سن جوانی است یک جوانی خودش را زیر راهنمایی نمایی استاکار قرار می دهد. تبدیل می شود به یک مکانیک بسیار ماهر تبدیل می شود به یک بنای بسیار ماهر یک جوانی خودش را در چارچوب یک مدرسه چه دینی چه دانشگاه باشه مدرسه باشه قرار می دهد جور استاد را تحمل می کند مشق و تکالیف و واجبات منزل را تحمل می کند سختی مطالعه و امتحانات را تحمل می کند در این چارچوب خودش را قرار میدهد فردا می شود یک پزشک، فردا می شود یک محدس، فردا می شود یک عالم، فردا می شود یک مهندس فردا می شود یک معلم یک شخصیت کسی می شود. ناکس از فرمان پذیری کس شود. اما اگر در, در غرور جوانی خودش این جوان قرار بگیرد و بگوید من آزادم معلم. چه کار است که به من دستور بدهد این کار رو بکن اون کار رو نکن مولوی چه کار است؟ اون تبلیغی چه کار است؟ اون عالم چه کار است؟ من خودم میخواهم هر طوری که دوست دارم زندگی بکنم من نمیرم زیر دست این استای بداخلاغ خشن او هیچی نمیشود آتش باش از تقیان خاص شود اقبال میفن تبدیل میشه به یک خاکستر این غرور جوانی او را یا با موتور و تکچرخ میزنه به دیوار یا زیر 18 چرخ میره یا بر سوار بر ماشین غرور آخر سر از زندانها در میاره یا سر از درگیری های مختلف توی جامعه در میاره یا معتاد میشه همه اینها برمیگرده به همون نافرمانی که این شخص در او وجود داشته است. در چارچوب خودت رو قرار بده جوان عزیز به خدا به نفع تو است به نفع انسان است که خودش رو دست کسی بدهد که او انسان را به بالا میبرد کاملی گر خاک گیرد زر شود ناقص هر زر برد خاک شود این زر وجود شما این کیمیای درون شما جوانها این استعدادهای درون شما وقتی که در دست یک انسان کامل قرار بگیرد در دست یک استاد کامل قرار بگیرد در دست یک معلم یک مربی قرار بگیرد شما تبدیل میشید به زر، شما تبدیل میشید به انسان مفید شما تبدیل میشید از یک انسان بی سواد بیهنر به یک انسان با سواد هنرمند که هنرمند هر جا رود. بیند و بر صدر نشیند همه دنبال تو میآیند از این ناامید نباش که در کشور ما تبعیض وجود دارد در استخدام ها برای جوانان بلوچ اهل سنت ارزش چندانی قائل نیستند یک سری گزینش هایی است که به ما اونجا که میرسد بزرگان ما شما زیاد در این زمینه انتقاد کردند و صحبت کردند اما اگر این در جامعه هم وجود داشته باشد باز هم ما نباید خودمون را از کس شدن و از باهنر شدن و از باسواز شدن و از مدرک گرفتن و مطلب گرفتن خودمون رو محروم بکنیم جامعه به شما نیاز خواهد داشت و جامعه به دنبال شما خواهد آمد در کوی شما بروید انسان ارزشمند را مردم به دنبالش میروند بهقول سعدی گوهر اگر در خلاب افتد همچنان نفیس است یعنی اگر در منجلاب که بیفته یک تلا تلا هست اما اگر غبار به افلاک رود، همچنان خسیس است انسان بیقدر والله لقمان حکیم یک انسان سیاه چرده بود سیاه چهره بود به خاطر کمالاتش سوری به نام او نازل می شود جوان باید در یک چارچوب قرار بگیره کمالات بیافزاید ما میگیم چرا بلوچستان محروم است که چه کسی محرومیت را از بین میبرد ما باید دارای مهارت باشیم تا محرومیت ها را از بین ببریم ما دارای توانمندی باشیم خود تو توسعه به وجود بیاور خود تو توانایی اشتغال زایی داشته باش خود تو توانایی کار آفرینی داشته باش توانایی ابتکار داشته باش خلاقیت داشته باش ناامید نباش ناامیدی همچو گور افشاردد گرچه الوندی پا می آردد انبیا گفتند ناامیدی بد است لطف و رحمت های باری بی است ناامید هم مشو که رندان بادنوش ناگه به یک خروش به منزل رسیده میگه به ناامیدی در برون مشو امید اینجاست در این خانه است در نزد الله است فزونتر از علد قفل ها کلید اینجاست این اطاعت مرحله اول است مرحله دوم ضبط نفس است کسی که اطاعت میکنه نفس در مقابل اطاعت خیلی براش سخت است تمرد میکند اقبال میگه این نفس بر علیه تو داره برنامه‌ریزی میکند اگر اطاعت را این نفس برای تو سخت میکند و تمرد را برای تو شیرین جلوه میدهد به به زمین خواهی خورد و اما اگر به حرف این نفس نکردی و کنترلش کردی در این چارچوب خودت را قرار دادی تو به یک انسانی تبدیل میشی که همه به او افتخار میکن نفس تو مثل شطور خودپرور است اقبال میفرمان خودپرست و خودسوار و خودسر است مرد شو آور زمام او به کف تا شوی گوهر اگر باشی خذف اگر سفالی اگر تو از یک خانوادی روستایی فقیر گمنامی اگر پدر تو کشاورز و بی است علامه دهر نیست و پزشک و استاد دانشگاه نیست تو خودت میتوانی بشوی به شرطی که بر نفس خودت کنترل داشته باشی اگر شطربانی جهانبانی کنی شوت همین نفس رو میگه اقبال میگه برای ساختن خود باید تو بر نفس کنترل داشته باشی گر شطربانی جهانبانی کنی زیب سر تاج سلیمانی کنی تو میتونی تبدیل بشی به کسی که زل اسم اعظم باشد کسی که خداوند او را به عنوان خلیفه در روی زمین قرار میدهد کسی که خداوند دعای او را میپذیرد کسی که خداوند نیت او را میپذیرد کسی که خداوند به وسیله او تحول به وجود آورد، غیرت را اینجا به کار ببر. که نفس میخواهد جلوی پیشرفت مرا بگیرد من نمیگذارم امام محمد غزالی رحمت الله علی میفرمایند که نفس مثل یک اسب سرکش است و غضب در درون انسان مثل یک سگ درنده و هار است تو این غضب درونی خودت را این سگ را را نسبت بر روی اون اسب سرکش مسلط بکن اگر میخوای خشم بکنی بر خودت خشم بگیر بر نفست خشم بگیر خشم بر دیگران نکن گر بر سر نفس خود امیری مردی و بر دیگران خورده نگیری مردی مردی نبود فتاده را پایی دست فتاده را بگیری مردی نازم مردانگی رو اینجا باید نشون داد و مرحله سوم اقبال میفرماهد که مرحله ولایت و نیابت حق است ولایته. تبدیل به ولی میشی دو کار بکن اطاعت و ضبط نفس تو تبدیل به ولی میشی بهش همینجا میاد به سراغ تو مولوی روی فرمود که همین دنیا برای انسان مؤمنی که نفس رو کنترل کرده لذت‌های بهشتی را احساس میکند بعد که آفتی این در هوا و شهوت است ورنه اینجا جنتا در جنت است یک قدم زد آدمان در ذوق نفس شد فراق صدر جنت توق نفس یک لحظه حوسترانی یک عمر پشیمانی چشم را باز کردی دیدی صفحات مبتزل جلوی موبایل تو هست کافی یک دکمه را بزنی تا باز شود و ایمان تو بر باز شود کافی یک دکمه را بزنی یک لینک را باز بکنی یک انگشت بگذاری انگشت گذاشتن بر او همان و خالی شدن از احساسات ایمانی همان لذت نماز دور می شود، لذت طلاوت از بین می رود شیرینی ذکر خدا از بین می رود محبت دین و علم و علما از بین می رود این خودی است که اقبال ما را دعوت بهش میدهد و این اگر درست شد هر فرد این افرادی که نشستی ما تو این مسجد اگر هر فرد ما به این توانمندی ها برسد این مجموعه چی میشود الله ندای لا بالقامه اعتبار و ارزش به قیمت و ارزش درونی انسان است توانایی ها و کمالات است نه به کثرت و نه به تعداد اصحاب بدر کم بودند اطرافیان پیامبر صلی الله علیه و کم بودند اما قیمت اونها زیاد بود ایمان داشتند توانایی داشتند لازم برای ساختن یک جامعه اقبال میفرماد هر فرد را درست کنیم ما میگیم برای ساختن یک جامعه خصوصا هر فرد جوان باید ساخته بشود اگر کل این کشور ما که از استانهای مختلف تشکیل شده است قرار است که یک کشور پیشرفته باشد باید هر استان این کشور پیشرفته باشد. پیشرفت ایران تنها با پیشرفت تهران نیست. تنها با پیشرفت شیراز و مشهد و اسفحان نیست. نقطه نقطه این کشور باید پیشرفت بکنه. آنگاه است که این کشور پیشرفت میکنه. شهر شهر این استان باید پیشرفت بکند از لحاظ دینی از لحاظ ایمانی از لحاظ علمی از لحاظ توسعه از هر نهاز که نگاه بکنیم فرد فرد یک خانواده باید درست بشود تا اون خانواده درست بشود خانه خانه این شهر باید اصلاح بشود تا اون شهر اصلاح بشود این نگاه از پایین به بالا نگاه دعوت است نگاه انبیا هست ساختن هر فرد برای ساختن جامعه مهم است اگر ما یک حاکم مسلمان را بر سر یک جامعه ای که از افراد بی دین و بی ایمان تشکیل شده بگذاریم اون کشور آباد می شود هرگز نمی شود اما اگر حتی یک حاکم بی دین بر یک کشوری که توانایی اون مردم از لحاظ ایمانی بالاست قرار بگیرد به زور به زودی این ملت اوضاع را تغییر خواهند داد لازه این رموز خودی است و اقبال میفرماد با عشق به خدا خودی مستحکم می شود با عشق به الله توانایی های درون جوان ما گل می کند و شکوفا می شود و مرحله رموز بیخودی دوباره شروع بعد از این شروع می شود یعنی چی؟ یعنی همه این توانایی ها باید در یک کل حل بشوند همه این قطرات باید با همدیگر بشوند یک دریا تشکیل بدهم. هر کدوم از این ها اگر جدا در بیابان بیفتد خشک میشه از بین میرود هر کدوم از ما اگر ساز خودش را بزند جامعه پاش پاش میشه پاره پاره میشه از بین میرود امتی بودی اممگردیده ای بزم خود را خود زهم پاشیده اقبال میفرمون اگر ما میخوام جامعه ما درست بشود باید این تفاوتها را کنار همدیگر قرار بدهیم تبدیل به اختلافات نشود این تفاوتها آغوش باز بکنیم برای استعدادهای متفاوت در کنار همدیگر قرار بگیریم فرصت اندک است و ما برای ساختن جامعه نیاز به جوانهای ساخته شده داریم برای ساختن جوانان نیاز به انسانهایی داریم که به این موضوع فکر بکنند و بیندیشند هرگز امکان ندارد که تحول در جامعه بیاد بدون اینکه ادی ادیه و فکر بکنند و بعد از فکر و مشورت برنامه ریزی بکنند و بعد از اون سرمایه گذاری بکنند و تلاش بکنند و تحول را ایجاد بکنند جوانهای عزیز اگر جامعه عقب است باید شما ناراحت باشید اگر جامعه مشکلات دارد چه مشکلات ایمانی و دینی شما باید بسیار پریشان باشید کسانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را نصرت کردند جوان ها بودند در مقابل سختی ها ایستادند در کنار رسول خدا ایستادن و صفحات زرین را در تاریخ به نام خودشون ثبت کردند. همین جوان ها سعد ابن نبی و قاص رضی الله عنه 17 ساله بود ایمان آورد مادرش گفت که خیلی هم مادرش رو دوست داشت خیلی هم فرمان مادر بود مادرش گفت که من ای سعد غذا نمیخورم آب نمی نوشم تا بمیرم و بعد مردم به تو آر بزنند و بگویند یا قاتل امه ای کسی که باعث مرگ مادرش شد سعد که از ایمان به الله سرشار بود و بصیرت ایمانی راهش رو روشن کرده بود و من یؤمن بالله یهد قلبه اینجا با زبان ایمان سخن گفت گفت ای مادر اگر تو سد تا جان داشته باشی و خاطر این که من از ایمان برگردم نخوری و بمیری دوباره زنده بشی و باز نخوری و ننوشی تا من از ایمان برگردم و باز بمیری اگر صد بار این کار تکرار بشود من از ایمان به خدا و رسول خدا بر نمیگردم مسعب نمونه جوانان مسلمان است عمار نمونه جوان مسلمان است صحابه اکثرا جوان بودند در کنار پیامبر صلی الله علیه وسلم بیایید ای جوانهای عزیز در کنار دعوتگران اسلامی قرار بگیرید ای جوانهای باسواد در کنار دعوتگران در کنار علما قرار بگیریم و جامعه را بسازیم بدون شما به خدا قسم جامعه تغییر نمی کند بدون همکاری شما بدون همت شما تصمیم شما اراده شما تحول آفرین است تحول در دست شماست تحول در اراده شماست تحول در احساس شماست شما می توانید هر فهم دیگر را بفهمید شما می توانید هم کیشان خودتون هم راهان خودتون رو را جمع بکنید در مسجد حاضر بکنید بیایید پیش عالم مسجد برای ما درس سیرت بگذار بیایید پیش عالم مسجد برای ما درس قرآن بگذار از ما چه انتظار داری هرچی میخواهی انتظار علما از جوانها چیست انتظار جامعه از علما چیست؟ از جوانها چیست این رو باید جوانها بیشنن با خودشون فکر بکنن یک جایی رفتم خیلی خوشحال شدم ادیه از جوانها نشسته بودند با خودشون احساس کردند که خیلی از کمبودها توی جامعه هست یک نامه نوشته بودند نامه نوشته بودند به طور خصوصی به علمای مختلف اون شهر داده بودند اون نامه رو من دیدم حرفشون این بود که مشکلات ما را دریابید ما را دریابید این احساس خیلی خوب است و الحمدلله توی این شهر و توی این دیار علماء ربانی و دلسوز بسیار زیادند. بیاییم به مجلس اونها بنشینیم و از مثل وجود خودمان زرد درست بکنیم. بیاییم در پرتو نور قرآن و نور حدیث پیانبه صلی علیه و وسلم اون انسانی که سیرت او انسان ساز است و هر انسانی باید افتخار بکند که محمد از جنس بشر است و من از همون جنس هستم. و من می توانم به او اقتدا بکنم ما که این پیامبر را داریم بیاییم بشینیم در این مجلس سیرت پیامبر و خوشحالیم خبر داریم که در این شهر ادی از جوانها و ادی از دانشجویان کلاس سیرت دارند مرحبا به اون جوانها بارک الله فیکم و تقبل الله جهودکم خداوند از شما بپذیرد این حرکت را به معنای آن است که غرب موفق نشده است به معنای آن است که فرهنگ غرب شکست خورده است به معنای آن است که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هنوز در دلهای جوانهای ما جای دارد و محبت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هنوز روشنگر راه زندگی جوانهای ما هست نتوانسته است هالیوود و بالیوود جوان ما را از مسجد بگیرد نتوانسته است رسانه‌های مبتزل غربی قلب جوان ما را اشغال بکند نتوانسته است با مسلط کردن ضعف ایمان و ضعف شخصیت جوان را از ما برباید بلکه جوان ما با ایمان کامل و با شخصیت قوی وارد میدان شده است نازا علمای عزیز دعوتگران عزیز به همه اخشار باید توجه بکنیم اما توجه خاص به قشر جوان است بیایم گروه جوانان انجمن جوانان هر اسمی که لازم اسم زیاد مهم نیست مشورت جوانان تشکیل بدیم یک مولوی آمد از یک منطقه از استان گلستان گزارش میداد میگفت که ما در شهر خود ما در هفته هر شب یک جلسه داریم هفته هفت جلسه بعد گفت که یک شب برای کودکان یک شب برای نوجوانان یک شب برای جوانان یک شب برای میانسالان یک شب برای کهنسالان از ترتیب سنی و مخاطب ما هم مشخص ما میدونیم عجب جناب استاد قاسمی هم تشریف داشتن گفتن قابل تقلید است و قابل تقدیر است حالا ما حداقل هفته یک نشست ویژه ها داشته باشیم به خودشون مسئولیت بدیم های ما پتانسیل آماده جنبش و حرکت هستند های ما وقتی به اونها بها بدیم وارد میدان میشوند. حضرت خالد رضی الله عنه عجیب وقتی مسلمان میشه خالد ابن ولید و عمربن ابن عاص رضی الله عنهما با هم میان خدمت پیامبر صلی الله علیه خالد تعریف میکنه میگه حالا جدای از اون که نامه نوشت برادرش که پیامبر اسم تو رو گرفته ای خالد و فرموده است که لمثل خالد یجهل الاسلام شخصیتی مثل خالد اسلام علیم نز نفهمیده است پیامبر یاد شما رو کرده دل او را می شکار میکند دل جوان ها را شکار کرد با یک تقدیری با یک توجهی با یک تشویقی با یک محبتی بعد میگه وقتی که من و امر ابن اس رضی الله عنهما هجرت کردیم به مدینه رفتیم مخفیانه محدور دم بود خالد حمزه را به شهادت رسانده بود به وسیله حمله او بود که هفتاد و چند نفر شهید شدند در میدان احد میگه من چهره را پوشانده بودم من و امر ابن عاص. از دور به مجلس پیامبر صلی الله علیه و وسلم رسیدیم پیامبر از دور ما را دید از دور پیامبر صلی الله علیه وسلم ما را دید شناخت لبخند بر چهره و بر لبان پیانبر صلی اللہ علیہ نشست میگه به خدا قسم از اون لحظهی که ما را دید تا لحظهی که در آغوشش رفتیم لبخندش ادامه داشت وقتی که اونجا رسیدیم وقتی امامه را برداشتیم از روی چهره عمر بلند شد خالد است بگیریم بکشیمش مهدور دم است صحابه را به شهادت سند پیامبر فرموده بشینید خالد را به آغوش میکشد خالد میگه ای پیامبر من بر علیه اسلام لشکر, لشکر کشیدم توت زیاد کردم کشتم از مسلمان ها برای من دعا بکن خدا مرا ببخشد پیامبر فرمود که الاسلام و یهدی ممکان قبله اسلام هر گناهی که کردی کفر و شرک و همه را از بین میبرد بازم گفت برای من دعا کن پیامبر درست شابا اللهم مغفر لخالدین. خالدین هر چه گناه کرده برای خالد معاف بکن شیست خطاب محمود شیست خطاب سرلشکری که کتاب می نوشته زیاد در زندگی نامه خالد و بقیه میگه یک نکته میگه این رو بگم و استاد تشریف آوردن و من صحبت رو تمام میکنم میگه پیامبر آغوش را برای خالد باز کرد و خالد سیف الله المسلول شد و باشیندن نام خالد ایران روم به لرزه در میآورد. اگر پیام بر آغوش برای خالد باز نمیکرد و از او سیف الله نمی ساخت یک جوانی بود که بالاخره به دست مسلمان کشته می شد یک توانایی های محدودی در یک کشوری داشت در یک تایفهی داشت اما تبدیل شد به سرمایه جهان اسلام و جهان بشر و فرماد امروز هم در میان جوانهای ما کسانی هستند که اگر وارثان پیامبر صلی الله علیه و سلم و اگر مسلحان و دعوتگران آغوش خودشون رو برای اونها باز بکنند و به تواناییهای اونها اهمیت بدهند و از توانایی های اونها در موردش استفاده بکنند ما خواهیم داشت خالدهای جدیدی را خواهیم داشت فاتحان مصر امر ابن های جدیدی را فاتحان ایران سعد ابن بی وقاس ها و مسنا و غیره را ما خواهیم داشت امروز هم ما داریم در میان این جوان های ما مولانا عبدالحمید جهان دیده ها هستند که دوباره ساخته بشوند مولانا عبدالعزیز ها از همین ها ساخته خواهند شد و بسیاری از پرشکان و مهندسان و مخترعان و مکتشفان و مصلحان و علمای ربانی و محدثان و فقها از همین جمع ساخته خواهند شد به شرط اینکه ما برای اونها فکر بکنیم ما برنامه ریزی بکنیم <تصفح> تشکر میکنم بار دیگر از اینکه این وقت در اختیار ما گذاشته شد و از کسانی که این برنامه رو اجرا کردند انشالله که مفید و نافه باشه. الله تبارک و تعالی به عمل توفیق عمل و اخلاص و قبولیت نهاد بفرماد و آخر و دعوانا عن الحمدلله رب العالمین و الله تعالى و سلم على خیر خلقی محمد و علی و صحبی اجمع. درود شریف <تصفح>